جلسه لسه یک فیخت هقنین چندون؟ هجده هشت بزار چهار سد و دو محسه آموزشالی و زفی اماموزم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين صلی الله علیه سیدنا و نبینا عبر قاصم محمد و علیه اهلویت تاهرین المعصونین سی مبقیت اللہ فی الارضین روحی و عربان عالمین اللہ حرفتا با تحکل من ای خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی بهرهوی تحتار الف ما سلام اون را واسطه کنم در بحث فقه تقنین که عرض کردم یک دو درس دو واحدی هست سه فصلی ما در نظر داریم متاسفانه دست به من افتاد پوزش میخوام که با تاخیرم اومدم حالا عرض میکنم و رشته ای هم که مفصل ترش ما داریم این فقه تقنین در سطح درسی که در رشته فقه و حکومت آمده اجمالا این ازال بحث مقدماتی بحث‌های حالت موضوع شناسانه داره بحثایی هم بحث مبادی تصریحی و اینها که من جدا والا نشان خواهم داد خدمت بحث مقدمات به ورودهای من دارم حالا آابین خیلی زیادی من در نظر گرفتم حالا باید پروژکتور بود می میدم. یه بحثی خاصگاه نظری این تذکر رو من عرض کنم که بعد اون سرفستی که خودم داشتم حالا تغییر چنددانی هم نداشت دوباره خودم یه بازگرریایی داشتم دو تا بحث رو مثلا در موضوع شناسی از بحث های بعد وردن تو موضوع شناسی یه قسمت هم در کلیات بیشتره هر چند ممکنه نیاز می من به یک نکته آغازی داریم که آقا نظری این بحثه یه سری بحث رو من تحکیب قرار می یه سری خاصگاه تاریخی طبیعتا تو دنیای اسلام یه سری بحث های دیگه هم به عنوان سفومین بحث که خواهم داشت حالا دو تا دیگه هم دارم با ترتیب این دو ستا رو حالا خیلی رو عرض می بحثی یه جوری پیش های اینی عملی و از جمله پیش ها و پیشفرس های کلامی که ما اگر میخوایم وارد فقه تقنیم، فقه قانونی گذاره بشیم این رو داشته باشیم و هر کدوم از این یه هدفی داریم بحث پیشنی، پیشینه تاریخی سری بحث داره پیشینه نظری که یه جایش به پیشینه تاریخی هم نزدیک بشه در پیشینه تاریخی دوستات و بحث رو من از جناب استاد سید احمد مددی من الهام گرفتم و دوستان از جمله جای عبدالله یه نتو فضای این بحث هستن اونها رو حالا یه مروری من میکنم در متن من خودم معمولا همچه می نویستم تقدیم میکنم یه منبعی که حال منابعی هست از جمله یک منبعی مجموعه مقالاتی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس زمانی که جای مبلقی رئیس اونجا بودن مجموعه مقالات کار شده بنظم خوبه ولی خب من حالیش ذهنم نیست معمولاً گزارش مقاله یا کتابی که زیرو بدم صح میکنم کنم تولیدی خودم ورود پیدا کنم اما منبع خوبیه حالا بعضی پایان نامه ها یا نوشتارهای دیگه هم ممکن باشه من یادم نره منبعم این منبعی که کار خودم است یه جاهایش تکی کارمون هست اون کار جلدی مبادی و اصول فقه حکومتی ای، که اینجا ما گرفته بودیم ولی کسی برده نه برده کار 4 جلدی عنوانش رو من گذاشتم مبادی و اصول فقه حکومتی و محور اصلی بحث حکم حکومتی بوده که از نظر من همپوشانی حدتکسری با قانون داره جلد اولش خاصگاه احکام حکومتیه جلد دوم و سوم مناسبات احکام حکومتی حالا عنوان ریزشی که فرق داره یه قسمتش احکام ثابت و متغیر رو به واسه گذاشتم یه قسمت هم احکام و عناوین اولی سانوی و جلد چهارم هم زوابته احکام حکومتی که به نگاه عام احکام و قانون توی وادی هستن به تقریبا میشه بگیم والله منظر من یکی تقریبا حالا یه جایی می‌تونه از 3 بیشتر باشه اون کمتر باشه بحث های خواستگاهی نظره خب تناسو با این بحث های مقدماتی داره بعضی بحث ها شده من تاکید بکنم جدا هم می نویسن خدمت شما تقدیم میکنم جامعه مجموعی من بالا اونها شیعه بکنم حالا دقیق فایلش دارم الان توی صفحه دست کدام فایل عربی ترجمهش هست فارسش داشتم حالا پیداش کنم تقدیم میکنم ولی تمرکزم بر برای اونها نیست اونجا تن اون من براساس اینکه سعی کردم اون صرف فصله پیش بریم حالا مقدمات که جایی طولانی بشه احساس طول کنم ولی به نظرم تأثیری داره من برای زمین سازی اون بحث خدمت شما عرض کنم فقه تقنین چه خاصگای نظری داره و چه خاصگای تاریخی تو بحث تاریخیش من شروع می‌کنم بعد خاصگای نظرش با تو نوشت الان یادم رفت کدام ج里 آوردم یه مسئله مهمی که خواهد. بحث تقنین حالا اشارت قانون وزاری بکنم بعد تو این بحث مفهوم شناسی رو من اول رو بردیم من منتقل کردن تو بحث موضوع شناسی اون به اونجا تنستم اما به هر حال قانون و معنای اجمالی که حالا داریم بعدا میرسیم صحبت میکنیم اما تو فضای اسلام چی جوری شده تو فضای بعد پیامبر خلیفه اول و دوم اینا یه های ایجاد کردن این رفیه ها تبدیل به مبنای نظری شد و در ادوار بعد شفافیت و بازنگریه هایی پیدا کرد نکته اول این که من توی یه جلد دوم فکر کنم این بحث یه نکته رو برجسته کردم بحث اسم لکل واقتن حکم خیلی استقرار کردم که فقه های ما یه جا برچه توضیحاتی دادن نوحلات و مبانی یه قسمت به مبانی نظریه نو بیشتر برمیگرده ولی اینجا اشاره میکنم که ها گزاره های اسلام کامله یعنی همون جامعیت حکمی حالا اینجا بحثم این نیستیم برای شما میخواه مرز کنم و اون اینکه فرایند عملی این بود که آقایان یه الان ما دو نقد چیز نیستیم که بگیم آقا مجگیری بکنیم بگیم آقا شما خلاف حق پیامبر زدید نزدید اینجا کار نداریم این بود که آقا یه رخدادی ایجاد میشه یه ما بگیم فقه مسائل مستحفظ عرب ها میگن نازله جمعش هم نوازل و میگن فقه و نوازل یه رخداد جدیدی که به وجود میامد مینفتن خب معمولا برانو خلیفه کار دارن محور حرکته و صحابه هم که هستن خود خلیفه هم صحابه است که یه مدتی خب اینجا ایناها میگه که بله در قرآن بود خیلی موارد به طور طبیعی نمیشه خلاف اسلام حرف بزنه آقا این احکام الله بررست پیاده اما یه جایی پیش میام که میگه آقا نه اینجا آقا کی آیه سراخ داره روایت سراخ داره بیارید کی سنت خبر داره بیاره حال ما مناقشه نمی قبول میکنن نمی کنن یه مسئله اینه که در واقع تاریخی یه جاهایی کعنه به خلمی خورن میگه نه آقا نبود دیگه اسم این رو ده من اسمم هم فشرده حالا به عنوان مناسبت دیگه در عنا ها ما نه بیا مرکز جامعه این بحثو جا داشتیم به اصول ف... یادم میاد تاریخ فخص. ما اصول فقه مقارن اینا اینجا بحث مفصل تری داشتن من اینجا ولی پایه مهمیه واقعا برای تقنیل مسئله بسیطه اما تأثیرش باید ببینیم تو تاریخ تو تاریخ به هر حال دنیای اسلام تو تقنیل چگونه است اینجا داره کم کم ادعا میشه خواه یه خلقی وجود داره بعد از اون طرف هم ایجابی داره میگه خواه اگر کسی آیه روایت سنتی داره که من الان تو ذهنم نیست بیارید خب یه موارد میارن. میگن بله این آیه. روایت فالان. اما یه جایی میبینن. ای خبر نیست. این الان به شهر برمیگرده. به عالم سبود. به عالم اثبات. به چی برمیگرده. این الان به عالم اثبات برمیگرده. میگن در اثبات ما چیزی ندیدیم که پیامبر فرموده باشه. ما بیاریم خدمت شما بگیم. خب نتیجه عملی چی میشه؟ فقدان حکمه در دست اونها مسئله مهم اینه که این پل میخوره به عالم تشریح وقتی میگه الان نیست اگر زمان ما باشه میگیم آخوان نیست روایتی چه, چه سندی میگه بله روایتش گم شده به دست ما نرسیده فاصله تاریخیه ولی وقتی چسبیده به زمان پیامبر، صدر اول اینو خواهده هم صحابن ادعای قدس و قداست و به حرال صحابه گیم در تعداد زیادی از خلیفه بگیریم تا این همه صحابه که الان همه صحابه هم دیگه مگر اون بیابان نشینی که از دور آمده از اینجا پل میخوره به عالم سبوت از عدم استیاد و عدم دستیابی و عدم وصول پی میبرن منطقا اینه دیگه که وقتی من پیدا نکردم من تنها نیستم فاصله هم, نب... هم هستن پل میزنن به عالم جل پس جلی نشده چی شده؟ خب خدا یا یه دلیل آن باید بیارن که بگن تفیز شده یه مستند بکنن به شهر روایت بیارن که آقا هر جا نبود این برای شما مثل اون روایت نخل یا مثلا شبیه اینا اینکه آقا این ها دنیای شماست من مثلا کار ندارم نوضوع الله پس این داره تفیز میکنه حالا اونها جدا حتی میگیم نه امور دنیا هم نه امور شرعی دنیا، امور دنیا به معنی که آقا نحوه ساختن میز باشه، بگیم آقا خود شما. ولی حکم خرید، فروش، ساخت، موشک، سلاح هستئی در زمان ما. اون زمان مسائل بسیر، آقا این دوتا دوا کردن، دواشون من الان هیچی پیدا؟ پس پل میخوره به عالم سبوت میشه، خلاصه عدم. عدم جن نبود و هب اندنلا خیلی من شما ارز کنم یاد مرحوم فرج نجات افتادم یه بار اشان یه حلقه های داشت من گفتم او بحث من این رو اسمش از همین منظر اسمشی گذاشتم اصول فقه سکولار حالا برامون دوستان این رو میخوام با این اشاره پر رنگ بکنم ببینید یه پل دیگه مقدمه دیگه اشاره بار بگم داری در عالم مذاهب الهی عدیان الهی مسیحیت تاریخی مسیحیت تاریخی قانون نداره شر نداره فابش در فرمان و حالا چند تا محدود اما یهود تلمود داره شریعت داره احکام شفاهی داشتند که تا هفته سال قبل اینو بعدا کار دارم هفته و سال قبل از آمدن حضرت مسیح علیه نبی و آله و علیه السلام اینها تبدیل به سنت کتبی شد و شد مشناه یا مثناه یا مصنا اسمای معادل عربیش مشناه یه تعابیر اینطوری اینا مکتوب شد خب الان اسلام و اونهای شریعت دارن مسیحیت تاریخی نداره چونگه مسیح تاریخی چون مسیحیت اصلی تابع سنت حضرت موسا فرمود باشه به اون معنی شریعت داره کامل هم هست حالا فرض کنیم یا کامل برندازه که خدا متحار فرموده به اون نسبت بگیم کامل خب بعد اونجا اونا گذاشتن که را تو تاریخ عملا دستشون خالیه میرسیم به ادوار بعد از قرن هشتم تا دوازدهم همت اوکراسی آمده روکار بعد اونجا میابشت در سنت کاتولیک نه ارتودکس ها اونها دیدن حاکمیت پیدا کردن اول تاج بخشی میکردن مشروعیت به تاج پاپ میدادن اما وقتی کارشان رفت بالاتر کلیسا پاین تر بود رئیس کلیسا امپراتور بود آمد بالاتر مساوی شد بعد رفت بالاتر خب نیاز به جعلیات حکومتی هم داره آمدن ادعای اسمت و اسمت برای پاپ یا شورای پاپی کردن یه مدنی هم حالا جهلیاتی هم داشتم طبق بیال های قبل که بگن آقایم این اختیار داره بنابراین آمدن جهل و حکم کردن. ولی باز جهل و شده خیلی وسیع نیست حتی با این درمان این نیست. من این رو تعبیر می‌کنم به سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی یه حد یا یه قسمتی رو مدعی شاره جهل و حکم کرده حالا با هر سیریشی که میخوان بچستکنن شوراهای پاپی و یا پاپ اسمتم داره و بعد جعلی بکنه میشه اون با یه تغییر داره تکمیل میکنه. یه موقع اسمت که میگه میگه خدا به ما یه جور داره الهام میکنه. میشه کار پیامبرانه حالا اون داره نسبت میده با عالم ربوطش. ولی یه موقع نه میگه من چون اختیاری دارم جهل بکنم اصلا فرض کن جهل کردن جعلشون چقدر مگه ادام پیدا کرده، چقدر که او شکست خورد؟ از دلش مذهب سوم به وجود آمد خب اصلا بحثا شد اینا تا زب سنت یهودی بر نمی که شریعت بگن ثعیب وجودی داره بیاد قبول کنید مذهب سوم آمد ادعا کرد پرتستانتیسم و مارتین روتر نام اینا آمدن گفتن باید برگردیم به شریعت یهود مقنای یهودم استفاده کنیم پس قبلش از منظر اونها یهودی ها خدای اونها رو حضرت مسیب رو به سلیب کشیده بودن پس اقبال با اون برم نبود اما به هر حال این شد من اسم اینو رو عرضم اینه که اسم اینو رو من میزم سکولارس. حالا بعضی که دیدم تعریف های دیگه هست بعضی ما بحثم کردیم بعضی بزرگواران میگن نه هوا به این نگیم سکولاریست سکولاریست چیزیگه هست حالا این معنا، حالا من برای تبا از این منظر که انفاهم از کنم اینجا خلع قانونی و جعل حکم داریم حالا اینا من تحکیب میکنم حالا یه مور جاهایی هم جای عبدالله این هم من فضایی ها جای مددی بحث ولد فقیشون نمیدم 27 سال 25 سال نمیدم یادم نیست کی بود ولد فقیشون بودین دو سال بود حسن خودشون یه بار من عرض کردم کفتنه 4 سال ولی نبارشون و نیزه دو ساله که متن معمولا آقای منتظرین همهش دستش بود نقدم میزم ولی اسفیش موقع خاطر که تو اون درس مثل نفر به عربی هم میگفتن اون ساختمان قبلشون زیر زمین محهدشون کجا های یز هم تشیف داشتن نهد مستشکل کلاس هم بودن که استاده عرفان هستن بعد هاجهای اسکندری بودن هاجهای عبد خدایی تشیف داشتن از رستان ماهای جوادزاده و نام بحث های خوی ولی نقد میزدن بدون به سال مکاسب ایشون من حالا غیر حضورته بیشترش دیگه و که اصولشون 7 8 سال سال خوشگرام ولی بعضی چه بود ممکنی یادم رفته باشه آداب این قسمت رو یا قسمت‌های قسمت دیگه کمک بفرمایید خوبه این قسمت که آه از نظر تاریخی اینها حالا یه چیزی من خودم دارم اضافه میکنم وسطش دیگه حالا یادم میاد کجا به اضافه کنم دیگه نمیاد ولی تقریر من اینه که از عالم محدودیت جعل ابرازی جو واسطه نبود مشکلی نبود پل خورد اونجا اسم اینا نظام است. اونجا تو عالم مسیحیت جا داره ولی اینجا وجود داره و اون تابع اصول فقه سکولار من تعمد دارم چون میخوام میگم حالا دیگه بحث بحثم نیست خارج از بحث ولی ادامه این طور شد خب آمر بل بله بله که اون مقداری که فشرده نیاز داره اینجا و تاثیر تو قانونگذاری داره رو بعد برجسته کنه. اون نکتهش چیه؟ وقتی که اینجا خالیه چجوری پر میشه یکی باید انشاء حکم بکنه دیگه چیزی نیست انسان هم باید انشاء حکم کنه یه قسم از انشاء حکم توسط خلیفه است میگه هزار رأی خلیفه اول دوم میگه هزار رأی خب یه جاهای دیگه هم نه یه مدل دیگه هست و اون اینکه از طریق اجماع غیر از ثقیفه اصلی ثقیفه های بعدی هم جو محل بود جلسه شعراش اونجا رو جا پیدا نکردم باید بگردم مددی هم یادم نیست گفته باشن چه منبعی چه کتابی ولی تلقیش ها من اون فضای اصول فقه سونه هم میگشتم دیگه اینا به میخوره در اون ثقیفه پونزن نفر مهاجر پونزن نفر انصار جمعی شدن مسائل مهم رو بحث میکردن. و اونجا یه مواردی اجماع تولید می شد حالا منطقی نیست که مثل اون عملاً در تاریخ ما تو ذهن اون نیست که مثل آتین بیان در اون میدان در اون آگورا به نظرم میدان آگورا اگه اشتباه نکنم جمع می شدن اونا که حق رعی داشتن شهروند بودن رعی میدادن. بردگان و زنان و خارجی ها حق رعی نداشتن ولی عمده می آمدن. اما اینجا حالا غیر ثقیفه اول که اونم تازه تحلیلش بحث بریم که اجماع اگه اون رو اجماع بگیریم اجماع چی بود؟ اون بیعتشون بیعت معید بود یا بیعت اصلی بود که اون یه جایی باید به اشاره که تناسب در از بکن ولی اینجا تو بیعت و طبیعیه که اون اجماعها محدود بوده ولی به هران اونها دیگه حق اجماع بگییم ولی اون که به اسم آم شاید تمام شده باشه دیگه ما قطع نیست که این تو اینطور مسائل بیان از جمله حال بحث سنت که میرسیم اینجا ظاهرن به این اجماع ایجاد شد پس اون خلعه یا با آزارعی و حکم, حکم حکومتی خلیفه پر میشده یا با آزارعی و انشاء حکم اممال و کارگزارانش تو ایالات و ولایات تو جاهای مختلف، تو مصر و کجا و کجا و ایران و اینها در همه که نمی آدن بپرسن. امکان نداشت. خدمت شما هست کنم یکی هم اجماع. اجماع اینجا اجماع چیه منشعه. اجماع کاشف نیست. اجماع کاشف حالا بعد تو بس مکتب دوم بغداد شیعه احتمالا برای مباحثه با اونها آمدن گفتن آقا ما در یه خواستن برای شرط در شرط بذارن. این تحلیل منه. یه تکاش از با جایی مددی من استفادیم. ولی این جایی یه زیر تقریر رو من تغییر میدم. میگم احتمالا خواستن به اونا مباحثه بکنن. بگن آقا باشه اجماع شما رو ما در صورت قبول میکنیم که کاش از قول نبی باشه. بعد روین اینقدر روایستان تبدیل شد به یه اصلا یه منبعی. حالا مصداق داشته باشه یا نداشته باشه. تو اصول فقه به نظرم اینجوری تو اصول فقه است. شد بله در بغداد در قوم کلمه اجماع به کار نمی رفت ادواره برد این شاهد برد پس اجماع هم اجماع منشه هم پرکنندی خلعه در مجموع شاد چی؟ آقا انسان باید پر کنه یا خود حاکم یا واگذار کنه مثلا اگه بخوام حالا طالایی تو عمیر تو ذهنم نیومده بود کسی هم ندیدم بگی ولی این شاید به این معنا تو ذهنم اومد بگیم اون شور اون شوره خدیث که در صقیفه برگزار می‌شد بعضی موقع‌ها تعدادش و بعد در بیاریم از جهت تاریخی من با وجود تو فضای اهل زیاد بودم فعلا برخورد نکردم بریم کجا خاطرم نمیام اونجای مددی هم از کجا میوردن این بحث رو که من از شامل ها میگم ولی جای مهمه اما این تعبیر رو به نظر خوب مطرح کنیم که بگیم چی بگیم اون رای اجماع کنده مجلس تقنین بوده ولی در بعضی مسائل مهمیه یه جای مجلس مشورتی یه جای مجلس تقنین که خروجیش میشد اجماع حالا اجماع هم احتمال داره بگیم به توافق معمولا توی حرف که همه هم نظر نمیشن ولی اون اون که میگه ما این نظر شخصی این نظر مجلس ما میکیم مسبب قانونه دیگه ریز نمیان بگیم چند نماینده تصویب کرد دیگه آقا مسبب مجلسه اسم اونو مثلا احتمالا گذاشتاشن اجما پس اینم اگر بخوایم یه تاریخ عملی بگیم برای تقنین تقنین جمعی شاید بگیم اون مجلس و خروجش هم اجماعه خب الان نخت این ناریم اینا مصداقی مصداقی که اجمالا نه هم. هم که بره بره بره بره بره بره این که یه جورایی علاوه بر نظر جمعی امن اول اینجوری بود که و این بضی میشود خب ایناره ولی چون که ادوار بعد معلودی سالا اون اجما مشروعیتش چیه میگم اینجا محفی کردم میخوایید بگید که آقا آو خلفه اول دوبا مثلا کنیم اون خودم یه اشاره کردم که آقا کجا اصلا اتعاست اون الان نریم فرض بگیم حرفی سنیه درست که از این باب میگم نه که مخالف نقدش, نقدش باشم اما خب الان تو این مسئله دو تا شک پیجا شد جوری تحلیلش کنیم از منظر اصولی بگیم این حاضر رهی چیه چجوری شما تولیدش کردی اینجا من میدن ما جای مددی بارها تو خاطر هست میفرمدن آقا اینجا قیاس این حاضاره ولی برداشته خود من اینه که تو ادبار بعد که اصول فقد کار شده این حاضارهی فقط قیاس نیست چند مورد دیگه هست یعنی منابع اصلی داریم منابع طبعی که برد بردستش کنیم منابع اصلی کتاب سنت اجما نه اقل نه اجما و چی؟ بیک فرمایید. آجام کتاب سنت اجماع که بس کردیم چهار رو میشه میشه؟ خب، اون یکی از. بله احل سنت. بله تغییر عقل رو به کار نمیبند تو منابع، ولی خیلی از این عقل انواع عقل. استثنان. خب. حالا. این شد منابع اصلی منابع تبعی، استسلاح یعنی تمسک به مساله مرسله صد ذرای فتح ذرای <تصفيق> البته در پونزه اجور شاید اجور منبع طبعی داریم به خاطر اختلاف مذاهب تعدد بردیان دارن از جمله مثلا مالکیان گیرن قول اهل مدینه که شبیه بیان ما دارن مثلا یه جوری شبیه ادراب البیت مثلا حساب میکنن <تصفيق> قیاس رو حالا طبعی. یکی دو موردش رو عرض میکنم الان لیستش بگم تأکید میخوام بذارم در تفاوت منابع اصولی منابع تبعی. الان صد زرایه، فتح زرایه استحسان استسلاح و منابع دیگه اینا منابع طبعی هست که من توی حالا یه بحثی که تاریخ اصول فقه مقارن دارم چند تا از اینا رو یکی تا نگاه دیگه دارم از جمله گفتم اینها ها محور پنشیشتشان اسم مسلحت نمیارن. ولی پنشیشتش انواع مختلف مسلحت سنجیه. ولو اینکه که خودش یه مستقله. ولی اونها انهای مختلفی مسلحت سنجیه. صد زرایه، فت زراعی و یکی دو ستایی دیگه. اینا خودشون یه جوری چیان هم؟ سنجیه خواستن. خب مثلا صد زرایه که من... خلیفه دوم رو که بخوایم تحلیل کنم میگم روی کردش صد زراییه خب این قیاس نیست نه نه حالا قیاس هم عرض میکنم نه شما باید کنم عرض کنم که اون هازارعی یه جاهایی من منشعه ها یه فکری میکنم یه فرایند ذهنی دارم خروجیش میشه اون رأی اما جوری میشه اون رأی میرسم یه جای قیاس میکنم یه جایی سطح می میکنم یه جایی فتح می میکنم یه جایی استصلاح میکنم یه جایی استحسان به معنای خواسته حالا دوتا معنا داره اگه نیاز میشه باید بگم خب اینجا اما برگردیم سر اون ممکنه مثلا جناب مستاد مددی یه نکته دیگه داره تو تاریخ ققع اصول سنی هست اونی که یکی دوسته تا نامه و اینا داریم و مستندات دیگه اول یه تفکیکی بگم تفاوت قیاس رو یه برچست روش بزنم قیاس یه جوری دوستان تهرانم در ضمن اگه فراموش داشتن میکروفون اگر موسوینو باز کنم فراموش داشتن به داشته باشن که کلاس خیلی خشک نشه اگر تصویر دوستانم میشد من می دیدم خوب بود حتماً که یه موقع تو فضای دوستان تهرانم باشه ذهنمون فراموش نکنه دوستان خوب. تهران رو. خدمت شما رسونم کنم سه تا نامه و بیان شفاهی و اینا از خلیفه دوم شب بیشتر میگه آقا به قاضی زمان اممالکی قاضی شده میگه آقا شما چهجوری قضاوت میکنیم روش تو این میگه آقا اول کتاب و سنت اگه نبود میگه قیاس میکنه یه دو مورد اینجوری دارید تو تاریخ فقه اصوله سنی یه ماه اکیدوتا متنم داره خودش میگه قایسل اون اگه پیدا کردیم اونو عمل کن اگه پیدا نکردی قایسل امور خب باشه این اثبات میکن که قیاس دوش هست اما ما تحلیل روانی بکنیم آیا برای پر کردن خلق قانونی و انشای های آیا فقط قیاس نه عمل کرده عمر خیلی جا ست بذاره آدم تندی بوده از جهت شخصیتی ما این رو توجه داریم ولی تحلیل اصولیش. ایشان میگه که آقا بعضی موارد پیش میاد سد زرایه چیه؟ سد یعنی بستان زرایه یعنی وسیله سد زرایه هم جمعه نتیجه چی میشه؟ هر جا که در تعبیر فارسی خودمونی اسمش بذاریم پیشگیری یعنی یک مسئله استفاده از یک وسیله یا یه فعلی مباهه اما این به خاطر اینکه پیشگیری بکنه که در یک قهر از در یه عمر منفی بیفتیم در یه حرمتی بیفتیم مثلا کسای آمدن متعه کردن بعد از منظر و بد در آمد و مثلا شاید آوروکزی و فلان آمد منش کرد این پیشگیر تحریم یک فعل یا ایجاب یک فعل برای الان معمولا به تحریم می تحریم یک فعل مبای یا رو برای که ما در دام یک گناه نیفتیم که جالبه تمود من یه کسی از طرف الجزایر محرب و, و اینو پیدا کردم رشتهش حدیث بود رساله‌ای نوشته بود که شریعون بحثش عید متحرک فرمود گفت آقا این متحر رو تعریف کرد مصلحتی بوده برش داریم این مصلحت محدوده خب بعد این حمله کردودن به آقا چرا از این حرفا میزنه گفت گفت من افتا نمی کنم افتا مولای امیرالمؤمنین مراکش اگه اون اجازه بده من بحث علمی میکنم رساله‌ش من ریس کردم می‌خواستم حالا اون تشکیش بگمی جوری همتون مانده خکمه شما از کنم به اینجا عمر صدق ذراعیه پس پر کردن خله فقط با قیاس نیست یه نقطه داخل پرانتیزی در آن در قیاس ارز کنم قیاس یه جور در واقع شرعی سازیه شرعی سازی نه منفیش نگاه نکنید منفی هست ولی از منظر کسی که به این میپردازه تیجول مثبت داره تلقی میشه اگر ما به اون فرد قیاس کننده مثبت نگاه کنیم مثلا یه مشخص وارد اون نشیم مشخص معلومه اباحه هست اما صد چی بود یک چیزی که حکم اباهد یا کراهت داره منش شما بکنی خاطر چی برای اینکه تحریمش میکنی برای اینکه توی گناه دیگه توی مصیبتی توی مشکلی یه چالشی یه موذلی موذلی اون یه بحث دیه است باره نقدش نمیخوایم ایشالا هدف ما الان مردش شما میتوان درسته فایی بگیم اون خلق قانونی رو چجوری پر میکنه آیا فقط با قیاس؟ من بخواستم شاهد بیارم فقط با قیاس نیست خودم حالا اون شیبه اجراش بایدوانه. اون شیبه اجراش میتوانه خود خلیفه بشه یا کارگزارش بشه یا حتی تونس مجمعه بگیم خودخانده سقیفه ای حالا بگیم شورا محلش سقیفه شعره خلیفه دوم اونجا ممکنه جمعی صد به کنن ولی ما و اونش کار نداریم این فرایند ذهنی شده خروجیش رو اونجا میگیم آقا شد اجماع یا مثلا رأی اکثریت ما الان تو این قسمت رفتیم ببینیم فرایند ذهنیش چیه حاضر رأی یا فقط قیاسه من به نظرم نه ذهن آدم که محدود به قیاس نیست قیاس جایی میکنن میخوان میگن آقا خب این حکم شرعی هست میخوان حرف غیر شرعی خودشون زیاد نداشته باشن میگه ببین همین شهر گفته این بسیعه دیگه شامل اینم میشه. که اونو به شهر بچست کنن. اونجا حاضر رای معونه باز داره. مگه ادعای این آقایان علم نیستش که ما از جیب مبارک نمیخوایم کلی حرف بزنیم حتی تله میکن. داریم میگیم آقا کتاب سنت بیار. حالا کتاب سنت یه موقع تصریحه. یه موقع ظاهره. یه جایی هم میگه آقا. انگارو این مساقم میگه ها یه چیزی میگه مناطشو من میفهمم تعمیمش میده باز میخواد گردن خودش این تحلیل من در مورد قیاسه حداقل اون قیاس صدر اول که گردن خودش باز نمیخواد بگیره میگه که نه این حرف شعره دیگه قیاس یعنی حرف شاره میخوا... نمیخواد میگه این جزء منطقه الف فرق ببخش از خالی از قانونه میگه نه قانون داریم چه جوری میفهمیدش با قیاس باز داره به شاره نسبت میده حالا این نسبت بعد کار داره بفرمیده از بحثیت بود خواست تاریخی بحث بحث برد در خلاق قانونی، یعنی ما من که من وجود ندارد حالا تو مسادی تاریخ رفت دررسی کنید نمیدین پیلیسوران و این سفره خلیفه ای دوشنبه رو میشه خلیفه ای خلیه قانونی نه نه, نه برای این نمیخواستم بگم نمیخواستم میگم اینجا خله فرماش حاجیقا هم گفتن که شعر بود من قبول کردم گفتم باستم سر این نیست داریم از این استفاده میکنم نقد شما درسته از این جد مد نظر من نیست من میخوام میگم شاهدم اون فرماش حاجیقای مددی رو میخوام تحلیل بکنم که آیا محدود به قیاس اولا خودش ممکن نگه میگه از اون تو خل قانون یه خازا رعی بعد من میخوام یه جوری نه نه من نمیخوام میگم این صاحبان یه جوری از طرز اوناست یه جوری در واقع اونا ها میخوان میگن که آقا اصلا قانون هست ولی چه جوری خلق در... اصلا حکم شرعی خلع نیست ولی من چه جوری میفهممش در عالم استبداد با قیاس ولی میخوام خوام که شعر داره اینه خب تو بحث صد ذرایم یه حکمی که ممکنه داشته باشیم البته اگر حکمم نداشته باشیم ممکن استفاده بکنه من اینجا میخوام شاهد بیارم که آیا از طریق قیاس فقط عمر این کارو می کرد یا راهای دیگه هم داره می میگم یه شاهد شاهد عملی از خودش هر چیزی که استفاده شده میشه میشه م... من ب... به نظر که محتوایش عامه. هم گیاه هم چیز خوب... دیگه هم باشه، میتوال فقه زراعی باشه، باشه، می باشه، نه، حالا اینجا نکته همینه، نکته اساسی. این تعبیر خوبیه. من بعد از می‌کنم در اون مفهوم اجتهاد و نسبتش با این بحث. خب پس تو این قسمت من می‌خوام میگم یه خلای خودشون قائلن یک دو پر کردنش یه جاهای شرعیش می‌کنن دیگه میگن نه اصلا پره با قیاس سه این که چیه؟ اونجا با اجماع، با رعی فردی یا اجماع اما تحلیل نیاز داره تحلیلش اینجا هنوز اصطلاحات اصولی که نیومده ادوار بعد اصطلاحات اصولی اگه با اونها نگاه کنیم ممکنه خود سنی هم تو تاریخ اصول یه تحلیلایی میکنن. میکنم یه جایی ممکنه تحلیل ما این اونها باشه یه جایش برای بر من الان بیان خودم میخوام ارز کنم که عدباته و به قول عرب ها و, و تعبیر های ساز و کار به کار ببریم یا بگیم قواعد و اصولیه بخواییم بگیم هر تعبیری بخواییم میگن میتوام اینجا تحلیل کنیم برای پر کردن خلم اینجا فقط یه تذکری مرز کنم که اینها یه مشکلی که ایجاد میشه شما مثلا ارز کنیم صد زرایه بکنیم یه همه در عقلیه مفهوم عقل که بکنیم اینا من نظرم عقلیه باید ببینیم کدام مصدق مشرویت داره کجا مشرویت نداره ولی غیر از مشرویت اینها مشرویت محتوای خود اینا یه مسئله بسیار مهم نسبت دادنه بشه شارع عملا یه جایی یا به آشکار یا نیمبند یا ناخداگاه ببین اینجا اگر کسی عمر بیا بیگه من دارم. اگه توماز یا عمر هم مثلا تعبیر اینجوری داره بعدیا مشکل به بعدیا هم برمیگرده اتفاق ممکنه کسی این اون آقای مراکشی بگه آقا این مصلحتی بودین، این ولی امر که ولی امر میشناسن که خلیفه میشناسن این اختیارات حاکمیتی داره که برای زمان خودش حتی اونجایی که شاره اصلا حکم الله داره مصلحتا یه کاری بکنه کار نداره اون خودش نامشرو باشه یا نه این کارش برای ولی امری تصمیم میگیره حکم صانوی حکم صانوی تعبیر عنوان صانوی حکم سنی ها ندارن تعاویل دیگه دارن ولی مقتواش همینه میتوانستن بگن این حکم صانوی پس تغییر پذیر حاکمانه بعد تغییر بدن اما و بشاره هم نسبت ندارن اطفایم بعضی جملات عمر بشاره دفاع از عمر نیستا تمسود به خودشان و خودشون میخوام بگم که اینجا یه جایی تمسک میکنه میگه هازار ایمون تاها مبتی احساسی چرا دارید نسبت میدید حالا دیگه باید فوقها وصولی بعدیه جدا جدا بررسی کنیم اگر برشتر... اجمالا یه سری یه جور رحلت نسبت دادن رو میتوانی پیدا کنیم خیلی اجماله بعد دیگه هر خقیه جدا دارید خب حال باید بریم ببینیم حالا فرض بگیریم مثلا شما فرض که نیاز زلان بریم فرض بگیریم طبقه فرض رایت. اگر به شار نسبت بدن چه اتفاقی رخ میده دیگه خلایه نیست. لذا به هزیهاشون اون, اون کتاب که من گفتم لکل واقتون. نتیجهش لکل واقتون حکمه دیگه. نتیجهش اینه که باید لکل واقتون حکمان رو بگن که بعضیشان هم میگن. منتا یه لکل واقعه دو سه مرحله است، یکی سبوتن، یکی اثباتن، درسته یکی هم مثلا مراحل بعد تو استنباط و اینها اثباتنی که و ابراز بکنم، یعنی ابرازن و بعد استنباطن خب، بعضیشون به این تعبیر یا تعابیر مشابه جامعیت ممکنه برسن، اگه برسن باید لازمه این باشه که هیچ خلق قانون در زمان خلیفه اول دوم ادعا نشده ولی به رزارم داره ادعا میکنن دیگه میگن آقا کتاب سنت اگه بود بیاره نیست یه جور تناقض میشه به تو سنت فبری اصولی و تاریخی اهل سنت اونو نمیخوایم باره ولی لازمه نسبت دادن اینه که میگه این حکم الله است خب پس خلا نیست خب. حالا اینجا یه بحث دیگه هم داریم تو کتاب من صوفاین رو بحث خله از این پا که شاره دسته را ایران باز بداشته بیگه خب. که هست نه خله هست اون نسبت معنیش اینی که خله نیست مگر یکی دو صورت که این رو میخوام ارز کنم یکیش این صورتی که آج آقای شهرس فرمودن که چیه که آقا شاره به من تفویز کرده خب این حالا این جز بحثه بعدی من هست اینجا به اندازه اینجا خدمت شما از کنم یه طریق اینه که بگیم یه حکمی داریم بله اینجا الان من حکم ندارم در مورد خرید و فروش مثلا این وسیله حکم خاص ندارم حتی فرض بگیم مثلا حکم آم نداریم شد خلف اما یه جمله اشاره مثلا خرموده گفته آقا هر جا حکم نبود من به حاکم یا به شورای قانونگذاری یا به فلان آقا می می‌کنم او جهل کند. یعنی تفویض تقنین داده تفویض بگیم تشریع داده چرا چون تشریح به این معنا ناقصه اما راه پر کردنش داده یه موقع نسبت دادن به این معناست ولی این دیگه حواس اون برای در اونجا خالیه راه پر کردن رو نشان داده ولی به هر حال تو اونجا چی سکولار هست این خالیه ولی مشروع اشکال نداره شار مثلا می توانه بگه اشکال نظری نداره از این مذهب غیر از اشکال کلامی داره یا نداره اون یه بس است اینکه اینجا حالا اینو من خواستم بعضی از تو مبانی کلامی پیش نیازهای کلامی به اونجا هم بیشتر میخورد خدمت شما از کنم این یه راه پس یه فرض که اگه داشته باشید. مثلا در اون امر خلافت اینا دارن میگن که به موام گذار کرده کو سندت چیه یا در قانون گذاریم باشونم یه راه ولی برای اینجا خلب به یه معنای هست اما راه درمانشو راه پر کردنشو نشان دادم این یه بحث یه بحث که نسبت دادن یه بحث تصویب و تخت است یه چند حالا حالتون بحث من اصول فقینا بیشتر بحثونم اینجا خیلی محدود اما اندازه که کارمون را اندازه مجموعیم بگیم اون چیه حسوی و تخته اهل سنت رو اه یه مقداری علمایشیه ما من فکر میکنم چون ارتباط زیاد ندارن خیلی الان تقریری ارائه میدن یه موقع تو توفضی سننی قابل قبول شاید نباشه اون چیه چون حالا من فضای تاریخ و اصول فخور کتابه و اصول و اینا زیاد میدیدم اگر بدون سراغ اونها بسه تخته که خب نگاه شیعی هست نگاه خیلی از سنیام هست اما اون بسه بباشید تصویب نه درست بسید تخته اه. اون جایی که میخوان بگن که یه بیانی میاریم دوسته مودلم تو بحث می‌گیم. تصویب اشعری تصویب معتزلی اینو خیلی اصل مسلم بگیرید اما داخل کتاب های اصولی سنی ها میگن تصویب منصوب به اشعری اولحسن اشعری خودون ها هستن خیلی قرص محکم نمیگن خیلی من اینه دیدم حالا بحث معتزلی هم زر متفاوته ولی خیزیت میگن منصوب این یه, یه جمله نکته مهمش و تأثیر گذاریش ببینید علمایشی وقتی که نگاه تختعی دارن و خیلی از سنیا شایدم بگیم اکثری نگاه تختعی دارن حتی خیلی از اونا که من منصوبه این یه این تصویر خوب نمیفهمم. یه جایی تو نقل قولا استنادا تردید دارن که اصلا چی بوده؟ این یه بحثه، یه بحثه مهم از یاد مبدویه تصویب از منظر اونها یعنی یه خلا که با... ببخشید یعنی اینکه که دوتا د... دو قول هر دو درست باشه ما میگیم خدای آخه دوتا قول نمیشه درست باشه مگر اینکه میگیم شما قائل به پلورالیس هستید نه اونجایی که حکم الله هست اونجا بیمعناه ولی اونجایی که حکم الله نیست و اینها میگن که آقا هر دو نظر درسته این باید به معنای خاص بگیریم و یه مقدار خود اونا شاید به این معنای نزدیک میگم به معنای خاص بگیریم نه بخوام اونها توجه بکنم یه ذره که بحثشون ببین لا بلا من حس کردم به این دارن نزدیک میشن چرا چون اصلا آقا چیزی نیست وقتی چیزی نیست که من حرفم بخوام مطابق و اون باشه هم میتونه حرف من به درست درستش هم حرف یک فقی در واقع کنده دو تا امشائه مثل اینکه بگیم آقا اگر انشاه بگیریمش. مثل اینکه بگیم آقا مجلس قانونگذاری سوئید این حکم رو تصویب کنه این قانون رو تصدیق آمریکاییه چیزی که تصویب کرده، رفتی هم نداره اگر بخوایم بگیم حکم الله چی و بگیم حکم الله وجود داره ثبوتاً من می‌خوام بگم حکم الله این است اونم بگو اون است اشتباه در البته دیر... بعض وقت بعض تو نحله تقریر چون یه وقته ببین خود سنی هم اینجا هم یه ذره تقریر را اقدام دارن من دیروز بعد روز یه تیکه میدیدم یکی از این بحثای اه... کتاب چیز بود قواعد کبرای مال ابن عزالدین ابن عبدالسلام که تو بحث مقاصدی خیلی مهمه خیلی کتاب مثال داره الباقی مقاصد هم همه به اون ارجاع معمولا مثال میدن یکی به اون یکی به ابن تیمیه مرحوم و هم بهش ارجاعنده داره تو سوریه بوده و اینها خب اونجا دیدم همین تصویر تخطی ی مدل ال کبرا حالا بزنید ازالدین ابن عبدالسلام که زیادی داره قواد کبرا قواد صبرا بحث میفقد مسئله داره من با بعضی دوستان ما همین متن با دوستان بحث میکردم براشان. همین بحث داره این ما که باید درست نیست چون یه جایی که اصلا اگه این طور باشه اون به تصویب تصبیب، کلمه تصبیب می‌گنه. ولی دیگه هیچ نیست. تشبیب کنم مثل چی؟ حاجی مددی هم یه بحث اینطوری من یه این دادم یه جاهایی تو این یکی دو تا مثال که می‌خوام عرض کنم این بیان از خودمه ولی اینجا شبیه این که می خورد به بحث‌های مددی هم به نظر اینجا خوبه. مثلا می‌میره قانون علما داریم می‌ریم محکمه. محکمه این طرف این ادعای مختلف دارن سال قیمت یه منزل منزل قیمتش تغییر حضی قیمت ثابت اصلا نداره این ادعای میکنه مثلا یه میلیون و یکی میگه دو میلیون این ارجا میده به کارشناس کارشناس چه کار میکنه قیمت های جور و جور دیده میگه این کوچه اونوری بری یک و کوچه اون بری یک بس. هفت سد اونیکی یک و یا زمانی نگاه میکنه تقییر خودش یه قیمت میذاره ممکنه هم قیمتی کشف بکنه به ها خیلی مقام نه اصلا انشاء میکنه میده به محکمه محکمه هم تقون عمل میکنه بگی اونجا اصلا قیمتی نیست اینجا هم اگر حرف اینا باشه این تصویبه بهتر می فهمیم لذایی خود سنویم توی این قسمت زنده مبهمه اینجوریه ولی علمای شیعه میگن بله اینا میگن هر دو حرف درسته اون مقدم قبلی کار ندارن که بابا طبق حرف اونها اصلا خلق قانونی وجود داره فرض میگیرن همه جا ملاسته که مقنون درست خودشون و اونجا وقت مبهم میشه ولی طبق و معم. پس من به نظر ما خسته شدن ساعت دستان در رفت با ترخیم خواهد ساعتی من ببینم دست کنمان به چی بود بعضی فایل ها من این قسمت رو نوشتم حالا با... یه قسمت رو تو م... اه... یه پیشنهادی میکنم اه... پیشنهاد نه تعریف از خودی اه... من تو سبک کارم این اه... کار استقراح خیلی زیادی کردم یعنی يعني... این کارش رو مشابه، این کار من خیلی سراغ ندارم تو استقرا، ولی کمک میکنه نوع چیز من سعی کتم دستم تو قسمت هایی دیگه اون کتاب هم هست یعنی حالا اونکه قیمتش گره من خودم هم بخوام بخرم دوچار میگم، ولی دوستان اگه بخرن من اجازه هم ندارم ناشره هم اجازه ندادن که پی دی اف چیزی من در اختیار دوستان بدم ولی اینکه کار ای... نه بس... همون <تصفح> دیگه. دیگه دیگه رو ب <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> فایلیه. اون بطن. اما تو خیلی از اینا من سعی کردم استقراء ریزی داشته باشم مبادی و اصول فقه حکومتی. حالا یه جلدش با این هست جلدش ازو بعد کتاب فردا کتاب فردا تو سایت اگر دو... تو انتشاراته کتاب فردا ناشر ناشران ناشر... ناشر... ناشر دار... ولی انتشار اون سایتی هم داشت به اسم کتاب فردا نمیدونم حالا قومیت میکنه کتاب فردا کتابو خریدیم اینجا آه. ولی بزرگوری برده یه دور معلوم نشه سه جلدش کیبورد هستن حاشا فرستید مال خودم نبود بله ناشر کتاب فردا یه سایت فروش اینترنتی دارم پاتوق کتاب فردا ولی به نظرم خیلی آه. ریزکاری کاریه باره توی من کتاب فروشیه در اول سال رفتیم کتاب بخواییم تو گوستان کتاب نبودی دو سر رفته بودم نبود ولی به عنوان یه مخبر آقا آب. نه به عنوان نویسنده ریز من خیلی استر استقرار کردم کتاب تو نیشی خیلی لذا اینقدر که تو در باغ شما منابع حالا اگه همش یه جلد بود منابع زیاد بود اما خیلی منابع من دیدم شوزی پیدا نکردم که دیگه تو منابعش کدوم من از جلداش نیمده به نظرم کمک های ریزی میکنه یه جایی هم یه دستبندی هایی من خیلی سکتر نیستم تو فتوه و حکم تفاوتش اقوال سکترم بیارم یه دستبندی بکنم خیلی جامعه تعریف حکم, حکم حکومتی سنی. هر جا سونی هم من گیرو مردم سکتم بیارم اصلش خب آره، اصلش به هر رو خواستم حکم نگاه شیعه رو بگم ولی تو سونی هم خیلی میگشتم خدمتش رو از این کمک خوب یه جایی به شما میکنه در خدمتش یه سؤال روزان روزان از اون اساسا از هم دارم قصد اشتبال و فلاحت در احنا سوری ندارم را به تفیل امروزی با حکومت دارم یعنی از اون اول اصلا در جنس این خب فقه فردی نمونده و اینجا من خواستم اصول فقر هم که گفتم اصول فقر یه مقداری یه وقت مقداری... نمیدیم کلش به سنباد یک کار رو فیدیری. یه وقت دارش میتوانه برج سیگه حکومتی داشته باشه ولی، حالا یه جایی که مناسبه باز من عرض باشه فرده از طبیعت کار وقتی اول کار با حاکمیت کار شروع میشه مسائل فرده که قطعا هست ولی برای مسائل حاکمیتی هم زنبان لده یه مقدار من این رو برخلاف تقریر خیلی دوستان به صورت کامل قبول ندارم حالا این مثلا کجا شما شما میرید مثلا که فخر قزا رو ببینید در اون تقریبی که داشتیم تو بغداد به ویژه بودن اونا سنی همش داشتن بحث میکردن دیگه رفیق بودن هم بحث بودن شاگرد و استاد بودن یا نه جدا بودن ولی بعد خیلی کتاب فقهی چه کار کردن برداشتن همون کتاب سنی گذاشتن جلویشون مسائل اونو با نگاشی این خب اونجا وقتی مثلا بگه سنی‌ها چقدر ابواب فقهی دارن باب القضاءه یا مثلا اموال اصلا خود سننی ها کتاب های فقه سیاسشون بحثایی ولای کجا کجاست تو یکی شروح احادیث مثلا شرح نووی اونجایی که روایات حاکمیتی و حاکم و از اونجا آمده اونجا... یکی در علم کلام من خیلیش نگاه کردم وسط علم کلام بازش هم آخر علم کلام باز امامتون یه جایی دیگه مثلا امامت کجا تو فقه بحث میشه مثلا تو بحث بقی میگن باقی داری محاکم باید با باقی مثلا اونجا امامت بحث کردن یا یه جا مثلا کتاب مفصل کتاب القضا خب کتاب القضا که علمای قطعی بحث میکردن و چون خیلی نمیگم همه علمای شیعی مثلا قومی ها نمیگم ولی برای حرف اونها نگاه میکردن و جامعه هم تو جامعه سنیه و هر حال خیلی با اونا درافتگی عملی دارن دعوا مرافه مراجعه با میکنم ولی علماش خیلی از رو می میشه وقتی اینجوری بسیاری از اون حاکمیتی توان باشه یعنی این مقدار من نمیدونم خیلی بزرگانا توجج داره ولی نمیگن به معناهای خاصی توان حاکمیتی نباشه ولی من میگم همه عین هم نیست یه جاهایی وقتی مسئله از روونه نوشته دیگه مثلا توضیحش هم همونجوریه شاهد مثلا تو بحث قضا تو شرط تغییر ازل و نصب قضا یا حتی رسیدن حکم قاضی به بخشید حکم حاکم به مثلا مصر به فلان ایالت و بلایت و فلان این همون رو گفته گفته آقا اگر قاض حاکم قاضی رو مجانن حضف مثلا ازل کنه مجانن اینجا یعنی گدرتن و همینجوری من در آرادی به در هم یا ف... برعکسش فرد غیر واجد قضاوت رو نصب بکنه چی میشه؟ خب اما مسئله حاکمیتی اوناست دیگه اونا تو کتاب هستان نشان، همین هستین هم توضیح داده خب، یعنی من میگم که خیلی کلیه ما باید ببینیم چقدر وجود داره بعد جنبندی کنیم بگیم یه جایش من بلازم یه جایش رو بزرگ کنیم نمینه آه باشید، ارزم طولانی نشه الحمدلله نقدر به دوستان